دوستای خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. در این دوره ما کل کتاب مقدس رو کتاب به کتاب بررسی می‌کنیم. حالا ما ترتیبی دادیم که کل عهد جدید رو در 90 جلسه بررسی کنیم. این جلسه جلسه دهم بررسی عهد جدید است. متشکریم که دانشجوی وفاداری بودین و تشویقتون می‌کنیم که از دیگران هم دعوت کنید تا در این دوری بررسی زندگی و تعالیم ایسا با ما هم راه شوند. این شما و این معلممون. امروز با هم به بررسی بزرگترین مباحثه عیسی مسیح می پردازیم که به اون مععزه سرکوه گفتیم. در جلسه گذشته شروع به تفسیر مشکلترین بخش مععزه سرکوه کردیم. در جلسه امروز باز هم می خواهیم به مشکلترین متن کتاب مقدس، و با حسات خداوند ایسای مسیح به پردازیم. این متن این گونه شروع میشه. باز شنیدید اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور بلکه قسم های خود را به خداوند وفا کن لکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پاینداز او است و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمی توانی کرد بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است شنیدید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، ابای خود را نیز به دو و هرگاه کسی تو را برای یک مایل مجبور سازد دو مایل همراه او برو. هرکس از تو سوال کند به دو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. شننی دهید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود دعوت کن. اما من به شما میگویم که،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 عیسی به ما میگه که چطور میتونیم بخشی از راه حلها و جوابهای او برای مشکلات باشیم؟ نه بخشی از مشکلات و یک علامت سوال دیگه. ایسا جمعیت رو به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی بودند که با حضورشون بر سر کوه اقرار میکردند که میخواهند بخشی از راه حلها و جوابهای او باشند. و گروه دیگر در پای کوه بودند جایی که انواع مشکلات در اونجا وجود داشت. هنوز هم کسانی هستند که بخشی از مشکلات هستند. حالا اصل موعظه سر کوه که در متا پنج، شش و هفت اومده باید در همون زمینه بررسی بشه. ما دیدیم که در بالای کوه عیسی به شاگردانش که با او ملاقات کردند و او میخواست اونها رو تعلیم بده تا بخشی از راحلها و جوابهای او باشن اینطور گفت. اولاً به درون نگاه کنند و ببینند که آیا چه رفتارهایی هست که نباید در زندگی اونها باشه و اگر میخوان بخشی از ها و جوابهای او باشن چه رفتارهایی باید در زندگیشون باشه تا بتونن نور و نمک این دنیا باشن خوشاب حالها باعث شد که شاگردان و ما به طور کاربردی به درون نگاه کنیم چهار تمثیلی که به دنبال خوشاب ها میاد از متن بلندی در متا شروع میشه اونجا عیسی به شاگردان میگه حالا به اطراف نگاه کنید در آیات 17 تا 20 متا 5 عیسی به پارسایی خود و اونها اشاره میکنه وقتی که میگه پارسایی شما باید بیش از پارسایی علمای دین و فریسیان باشه. بعدو میگه پارسایی شما باید در روابط به کار گرفته بشه. در پاراگراف بعدی بعد از متا 5 عیسی به شاگردان درباره روابطی تعلیم میده که اونها باید در اون روابط پارساییشون رو نشون بدن. باید راستی رو در زندگی شخصیشون نشون بدن. عیسی درباره روابط شاگردان با برادرانشان و دشمنانشان و همسرانشان به اونها تعلیم داد و بعد در پاراگراف 4 با اونها درباره گفتگوهای شخصی خودشون صحبت می‌کنه. گفتگوها در روابط بسیار مهم هستند. پاراگرافی هست که در اون عیسی درباره اهمیت گفتگوهای اونها و تعهدات اونها در روابطشون با اونها صحبت میکنه. بعض رو از روی احساسات صحبت می کنن و از این رو انواع تعهدات رو میسپارند اما نمیتونن به اون عمل کنند. وقتی تعهد می کنن شاید منظور بدی ندارند اما تعهدات غیر واقعی میسپارند. اونها تعهداتی رو به زبون میارند که قصد انجام اون رو ندارن. بعد از اون به کسانی معروف میشن که سر حرفشون نمی استن. در این پاراگرافی ها یاد میده، درست نیست که تعهداتی بسپارید که قصد انجامش رو ندارید. کلام شما باید تضمین بشه. شما نباید تنها مرد سخن باشید بلکه باید صاحب کلام خودتون باشید. سالها پیش من خونه از آقایون محترمی اجاره کردم. هرگز اونا رو فراموش نمی کنم. گفته شد که اونا نمیخوان قرارداد ببندن. من کمی نگران بودم که خانوادم رو به خونه ای ببرم که قرارداد نداره. اگرچه اجارش خیلی پایین بود میدونستم که اگه قرارداد نداشته باشم اونا میتونن بعد از اسباب کشی اجاره رو بالا ببرن وقتی که با اون پیرمردها صحبت کردم من دلایلی آوردم که باید قرارداد ببندیم یکی از اونا گفت پسرم اگر تو نخوای که توی اون خونه بمونی ما هم نمیخوایم که تو توی اون خونه بمونی و اگه ما نخوایم تو توی اون خونه باشی تو هم دلت نمیخواد که توی اون خونه باشی حالا ما قرارداد رو برای چی میخوایم؟ من گفتم خب فقط فکر میکردم که از شما قول بگیرم بعد از اینکه اسباب کشی کردم اجارتون رو بالا نبرید. او به من نگاه کرد و گفت قول میدم. من به او نگاه کردم و میدونستم که سر حرفش میمونه. خب او و برادرانش مسیحی نبودن. اونها کسایی بودند که ارفن اعتقاد داشتند که سخن شما باید تضمین شما باشه. اونم معتقد بودند که اگر شما قولی میدید اون به اندازه قرارداد متبره. من در اون خونه زندگی کردم. اونا هرگز اجاره رو بالا نبردن. من میدونستم که میتونم روی اونها حساب کنم. این چیزی بود که ایسا در پاراگراف اول که در ابتدای این درس خوندیم تعلیم میداد. وقتی شما تعهدی شفاهی میسپارید، وقتی میگید بله، منظورتون بله هست. و اگر میگید نه، منظورتون نه هست و بر روی پاسخ نه، پافشاری میکنید. بعد از این پاراگراف دو پاراگراف دیگه میاد که عیسی تعالیم اخلاقیش رو میده این دو پاراگراف شامل مشکل ترین تعالیمی است که ما به اونها موعظه سر کوه در این دو پاراگراف هست که عیسی میگه با شریر مقاومت نکنید و دشمنانتون رو محبت کنید این دو پاراگراف اونقدر سخت هستند که بسیاری از مردم میگن موعظه سرکوه برای این دوره کاربرد نداره اونها معتقدند که ما در آسمان اینطوری زندگی خواهیم کرد اما در این زندگی روی زمین این امکان نداره اونا میگن به خاطر این دو پاراگراف این تعالیم امروزه کاربرد نداره وقتی به این دو پاراگراف مشکل می رسیم بذارید بر روی چیزهایی متمرکز بشیم قبل از هر چیز یادتون باشه که در این شش پاراگراف متطا 5 عیسی سعی نمی کنه که بهتر از موسا باشه بلکه او میگه تعالیم من در راستای تعالیم علمای دین و فریسیان نیست حالا گاهی منظورش این بود که او موسا رو اونطور که علمای دین و فریسیان تفسیر می تفسیر نمی کنه. گاهی منظورش این بود که تماماً با تعالیم اونها مخالفه. اون تعالیم از کتاب مقدس و شریعت موسی گرفته نشده بودن. در این پاراگرافای ایسا با تفسیر علمای دین و فریسیان از موسی مخالفت می کنه. موسا می چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان. وقتی موسا این رو گفت، او داشت امتیازی برای بعضی افراد خشن قائل میشد این مردم اونقدر خشن بودند که وقتی آسیب میدیدند دیدند عدالت نمیخواستند اونها انتقام میخواستند بین ادالت و انتقام فرق زیادی هست موسا در شریعتش گفت چشم در مقابل چشم این ادالته. اما مردم چشم در مقابل چشم نمیخواستند اگه کسی ضربه‌ای میزد و دندان اونها میافتاد، فکر اونها این بود که تو دندان منو رو شکستی، من چانه تو رو خرد خواهم کرد. یا تو چشم من رو کور کردی، من سر تو رو خواهم برید. این ادالت نبود، بلکه انتقام بود. خب، موسا می گفت تنها چیزی که میتونید بگیرید یک دندان و یا یک چشم. منظور موسا دقیقا این بود. اما علمای دین و فریسیان این تعلیم موسی رو گرفتند و این طور فکر کردن همسایت رو محبت کن، اما از دشمنت نفرت داشته باش. ولی منظور عیسی نبود از نظر علمای دین و فریسیان همسایه شما دوست یهودی شما بود و بقیه انسان‌ها دشمن شما پس اونها میگفتند دوستان یهودیتون رو محبت کنید و از بقیه متنفر باشید وقتی عیسی اینجا تعلیم میده او تعالیم رو اصلاح میکنه موسی هرگز نگفته از دشمنانتون متنفر باشید مفهوم محبت به دشمنان فقط یک مفهوم مربوط به موعظه سر در عهد جدید نیست بلکه اون مفهومی از عهد قدیم هم هست. به یونس گفته شد که به نینوا پایتخت آشوریان بره و برای دشمنانش موعظه کنه. آشوریان بدترین دشمنان قوم یهود بودند و به یونس گفته شد که بره و محبت خدا رو برای دشمنانش موعظه کنه. پس این مفهوم جدیدی مربوط به موعظه کوه نیست. هوشع زنش جمر رو هر چند که وفادار نبود محبت کرد. پس نظریه محبت به دشمنان و بیگانگان در تعالیم عهد قدیم هم وجود داشته موسا هرگز نگفت همسایت رو محبت کن و از دشمنت نفرت داشته باش پس عیسی میگه من به شما میگویم دشمنان خودتون رو محبت کنید دیدگاه دیگری هست که ما باید وقتی به این پاراگراف مشکل میرسیم مد نظر داشته باشیم این تعالیم در پایین کوه داده نشده بلکه در بالای کوه داده شده این تعالیم به توده مردم داده نشده بلکه به شاگردان داده شده کسانی که به عیسی اعلام وفاداری کرده بودند اونا وقتی به بالای کوه آمدند در واقع به عیسی گفتند که ما میخواهیم بخشی از راحلها و جواب‌های تو باشیم و حاضریم به خاطر اون بمیریم حالا وقتی عیسی میگه با شریر مقاومت نکنید و یا دشمنان خودتون رو محبت کنید او داره جایی و زمانی و به گونه‌ای و خطاب به کسانی این رو میگه که حاضرند برای عیسی بمیرند به هر حال مهمه که بفهمیم شاگردانی که در سر کوه به عیسی ملحق شدند پیشاپیش پیش تصمیم گرفته بودند که حاضرند به خاطر عیسی بمیرند وقتی عده این دو پاراگراف رو میخونن میگن صبر کنید ببینم ما میدونیم که اولین قانون مدنی حفاظت از خود هست اگر با شریر مقاومت نکنید دشمن ممکنه دار و ندار شما رو ببره وقتی حفاظت از خود قانون اصلی و واقعی زندگی هست این تعلیم عیسی نمیتونه درست باشه. اما حفاظت از خود قانون اصلی زندگی برای یک شاگرد مسیح نیست. قانون اصلی زندگی برای شاگرد مسیح جلال دادن به خداوند و انجام اراده ایسا است. حتی اگر به بهای زندگی شخص تموم بشه. فرانسیس آسیسی بر این اعتقاد داشت و به اون دو پاراگراف عمل می کرد. در طی جنگهای مذهبی، فرانسیس از یک ترک پرستاری میکرد که زخمی شده بود یکی از جنگجویان که با اسب از اونجا میگذشت به فرانسیس و ترک زخمی نگاه کرد و گفت فرانسیس اگر اون ترک خوب بشه تو رو میکشه فرانسیس جواب داد خوب خب موقع قبل از اینکه این کارو بکنه محبت الهی رو خواهد شناخت از نظر فرانسیس اصلی ترین قانون زندگی نبود که باید از خودم محافظت کنم بلکه این بود که اون ترک زخمی باید محبت الهی رو حتی اگر به بهای زندگی من تموم بشه بشناسه چون این خدا رو جلال میده من نمیخوام این دو پاراگراف رو طوری تفسیر کنم که صلح طلب خونده بشم من صلح طلب نیستم وقتی کتاب داوران رو در عهد قدیم بررسی میکردیم من در مورد جنگ جمله ای اظهار کردم شما میتونید از جمله ای که در مورد جنگ های برانداز اظهار کردم بفهمید که من شخص صلح نیستم من گمان نمیکنم که وقتی عیسی داشت این الیم رو میداد منظورش این بوده باشه که نباید نیروی پلیس و یا نیروهای انتظامی وجود داشته باشه. اگر بر مبنای اعتقادات افراد سوال طلب این دو پاراگراف رو تفسیر کنید اصولا نباید هیچ نیروی پلیس و یا ارتشی وجود داشته باشه. شما اجازه میدید که شریر به کار خودش ادامه بده. من به این واقعیت افتخار میکنم که نیروهای متحدین جلوی هیتلر رو گرفتند. اگر اونها مانع هیتلر نمیشدن امروزه یک یهودی هم زنده نبود. نه تنها یهودیان بلکه مردمان اسلواکی هم وجود نداشتند و تمامی کسانی که به نظر هیتلر اقوام پست بودند از بین رفته بودند. من نمیخوام این پاراگراف ها رو اینگونه تفسیر کنم که بگیم وجود ارتش برای متوقف کردن هیتلر کار درستی نبوده. باز هم تکرار و تاکید می کنم که به مردم پایین کوه و مشکلات اونها نگاه کنید. ایسا در مورد روابط صحبت میکنه رومیان بر این مردم غلبه کرده بودن ایسا داشت به اونها می اگر سربازان رومی از شما بخواند که بار او رو یک مایل حمل کنید شما دو مایل حمل کنید مسئله این نبود که جنگ بکنید یا جنگ نکنید فکر میکنم مهمه که درک کنیم چیزی که اون میگه اینه. در رابطه انسان درونیتون با مردم باید به اونها نشون بدید که راه بهتری برای زندگی هست سوال کلیدی واقعی در این دو پاراگراف سوالی در پاراگراف دوم هست. شما بیش از دیگران چیکار میکنید شما چه تفاوتی با دیگران دارید عیسی دوباره میگه به پایین تپه نگاه کنید آیا مردم پایین کوه رو می بینید؟ خب اونجا یک رقابت هست مثل دعوای سگها سگی سگ دیگر رو میخوره حالا عیسی داره به این شاگردان میگه شما باید برید پایین به اونها نشون بدید که نباید اینطور باشه زندگی یک رقابت نیست. با هم دعوا نکنید هیچ کدام از شما سری نیستید. حالا برید پایین و این رو به اونها نشون بدید. اینها اساس حقایقی هستند که عیسی میخواد به اونها تعلیم بده. اینجا چالش بزرگی وجود داره. در سراسر تعالیم کوه عیسی گفته شما باید متفاوت باشید. وقتی گفته شما نمک جهان هستید، منظورش این بوده که باید متفاوت باشید. اگر می‌خواهید مانند نمک درون گوشت نفوذ کنید و اون را از فساد حفظ کنید و خود شما فاسد باشید چه چیزی اون گوشت فاسد رو حفظ خواهد کرد؟ هیچ چیز. پس شما باید از گوشتی که به درون اون نفوذ می‌کنید متفاوت باشید. این یکی از های این تمثیل هست که میگه شما نمک این جهان هستید. وقتی این واقعیت رو بپذیرید که باید در روابطتون متفاوت باشید، به این نتیجه می‌رسید که هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می‌نمایند، چه فیزی نشون دادید؟ هیچ فیزی در این کار وجود نداره. کلمه یونانی کاریز به معنی عطیه همون کلمه ی فیض هست. وقتی فیض یا عطیه در زندگی شما فعال باشه، اون عطیه یلاهی هست. عهد جدید به ما میگه که کلیساهای های عهد جدید عطایا دارند. نسل اول کلیساها ها عطایا رو در روز پندیکاس دریافت کردن. اون عطا مردم در کلیساهای عهد جدید این قابلیت رو داد که متفاوت باشند. ای هست که تمامی کتابهای عهد جدید به ما میگن که ما فیض خدا رو دریافت کردیم که از تعالیم عهد جدید پیروی کنیم که ما رو متفاوت از مردم این دنیا میکنه. دوستی داشتم که پنج سال اول خدمتش رو در افریقای شمالی خدمت میکرد. در طی سفر دریاییش به افریقای جنوبی، او به اولین مسلمان شهادتش رو میده. چون دوست من قرار بود خادم مسلمون ها باشه. وقتی به اولین مسلمونی که روبرو شد شهادت داد، از اونجایی که تازه فارغ و تحصیل شده بود، به اون مسلمون گفت فرق بین من و تو اینه که تو پیغمبری مرده داری، اما من مسیح زنده رو دارم. مسلمان رو به او کرد و گفت بذار ازت بپرسم، مسیح زنده تو چیکار میتونه بکنه که پیامبر مرده من نمیتونه بکنه؟ دوست من جواب مناسبی برای اون نداشت. او به افریقای شمالی رفت و پنج سال در اونجا زندگی کرد. پنج سالی که سختترین سالهای زندگیش بودند. وقتی که به اوج سختی در اونجا رسید، به سوالی که اون مسلمون از او کرده بود فکر کرد. مسیح زنده شما چیکار میتونه بکنه که پیامبر مرده من نمیتونه بکنه. وقتی او به کشورش برگشت، شروع کرد به خواستن، جستجو کردن و کوبیدن. مثل مردان حکیم، او داشت دنبال عیسی میگشت. او میپرسید عیسی کجاست؟ ایسای مسیح زنده هست و بر روی کره زمینه اما او کجاست؟ او ایسای زنده رو پیدا کرد او چیزی رو که امروزه بهش تجربه عطایا میگیم تجربه کرد او با ایسای مسیح زنده شد بعد وقتی از او همون سوال رو میکردید کردید که مسیح زنده شما چیکار می ته بکنه که پیامبر مورد نمی بکنه او جواب خار به اون میداد ایسا در اون پاراگراف میگه شما باید جواب مناسبی برای اون سوال داشته باشید شما چه کارهایی بیش از دیگران انجام میدید؟ شما چه تفاوتی با دیگران دارید؟ اگر تفاوت نداشته باشید نمیتونید راه حل و جواب باشید. تنها راهی که میتونید متفاوت باشید اینه که فیض رو دریافت کنید تا متفاوت باشید. وقتی که شما این دو تعلیم اخلاقی عالی رو از عیسی میشنوید که میگه با شریر مقاومت نکن و دشمنت رو محبت کن از خودتون این سؤال رو بپرسید. آیا من این فیض رو دریافت کردم که تعالیم عیسی را بپذیرم و متفاوت باشم معجزه سر کوه به این ترتیب به پایان میرسه وقتی به باب شش می رسیم، متوجه میشیم که عیسی مسیر تعالیمش رو عوض میکنه تا این مرحله عیسی از شاگردانش میخواست که به درون نگاه کنند خوشا ها شاگردان رو تشویق میکرد که به درون نگاه کنند و رفتارشون رو بسنجند در ابتدای چهار تمثیل میگه شما نمک جهان هستید نور جهان هستید شهری بالای تپه هستید، چراغی روی چراغدان هستید. در تمامی اون پاراگراف ها در مورد روابط که به دنبال این چهار تمثیل میاد، عیسی داشت میگفت حالا به اطراف نگاه کنید. آیا واقعا اون مردم رو می بینید؟ به اطراف نگاه کنید. آیا نیازها رو می بینید؟ آیا مشکلات رو می بینید؟ بسیاری از مردم هرگز مشکلات رو نمی بینن. اونا هرگز به اطراف نگاه نمی کنند. تعالیم عیسی در باب 6 میشه. او شاگردانش رو به چالش میکشه که به سه مسیر نگاه کنند. در باب شش ایسا عیسی می میگه: حالا اگر میخواهید که جواب و راه حل من باشید، باید به بالا نگاه کنید." در باب شش عیسی با شاگردانش درباره انضباط عمودی صحبت میکنه. اگر بخواید که محبت به دشمنان تحقق پیدا کنه، باید متفاوت باشید. و اگر بخواید که متفاوت باشید، باید فیض داشته باشید. باید عطایا داشته باشید یعنی باید به بالا نگاه کنید شما نمیتونید چیزی در خودتون پیدا کنید که دشمنانتون رو محبت کنید یعنی باید به بالا نگاه کنید وقتی عیسی تعالیم مربوط به روابط رو به اونها داد بعد از اون بود که احتمالاً اونها فهمیدند و گفتند ما نمیتونیم اینطور زندگی کنیم عیسی در باب 6 گفته یقینا شما نمیتونید پس بذارید مسیر بعدی رو بهتون نشون بدم به بالا نگاه کنید باید یاد بگیرید که به بالا نگاه کنید ما باید یاد بگیریم که با نگاه به سه جهت زندگی کنیم شما این سه بُعد رو مراتباً می‌بینید که در کتاب مقدس به تمثیل به تصویر کشیده شده ما اونها را در بررسی عهد قدیم دیدیم اگر میخواهید به لحاظ روحانی بالغ بشید باید به درون نگاه کنید و هر چیزی رو در اونجا میبینید اعتراف کنید و بعد از اینکه به درون نگاه کردید و به گناهانتون اعتراف کردید چیزی رو که خدا میخواد به شما بده دریافت کنید و بعد به اطراف نگاه کنید. اگر میخواید نور و نمک جهان باشید، باید اونطور که خدا از شما خواسته با مردم ارتباط برقرار کنید. به هر حال شما واقعا نمیتونید اونطور که باید به درون و به اطراف نگاه کنید مگر اینکه به بالا نگاه کنید. در باب شش انجیل متا ایسا به شاگردانش میگه به بالا نگاه کنید. اولین چیزی که ایسا در باب شش میگه اینه. مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندید زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید پس هرگاه صدقه می‌دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان‌ها می‌کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند و اما تو هرگاه صدقه می‌دهی نگذار دست چپت از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدق دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. اینجا عیسی درباره انضبات رو به بالا یا از مباشرت و دعا صحبت میکنه. آیا می دونستید که دعا کردن نزد خداوند یک انضبات روحانی هست؟ دعا کردن نزد خداوند، یکی از چیزهایی که باعث میشه شما در زندگی روحانی و در ایمانتون رشد کنید بنابراین بلافاصله در باب 6 عیسی به شاگردانش میگه دعای شما باید در خلوت باشه نه در سر چهارراها و معابر عمومی در اینجا میبینیم که فریسیان و علمای دین به خیابانها و جاهای شلوغ می‌رفتند و اونجا دعا می کردن عیسی همچنین میگه وقتی صدقه میدید کاری کنید که دست چپتون از کاری که دست راستتون میکنه با خبر نشه تا پدر نهامبین به شما پاداش بده. حالا اینجا حقیقت بزرگی هست. سلامت روحانی شما مربوط به تعهداتتان در مقررات صدقه دادن هست. تا حالا متوجه شدی؟ عیسی در لغا 16 گفته وقتی به انجیل لغا برسیم اونجا خواهیم دید. اگر پولتون رو طوری مدیریت کنید که آنچرا که مال خدا هست به او بدید، او شما را با های حقیقی برکت خواهد داد. او شما را به لحاظ روحانی برکت خواهد داد اما اگر در این زمینه متعهد نباشید او برکات روحانی رو به شما نخواهد داد یعنی اینکه برکات روحانی در نتیجه اطاعت در این عرصه وارد زندگی شما میشه بنابراین دادن هدایا و دهیک یک انضباط روحانی بسیار مهمی است آیا متوجه این حقیقت شدید تاکید اینجا بر اینه که وقتی میدید به خدا بدید حتی اجازه ندید دست چپتون از دست راستتون خبردار بشه. بعضی ها میگن که یکی از بزرگترین حیجانات در دنیا اینه که هدایای بزرگ بدون نام بدید و بعد اون مشخص بشه. سوال اینه، البته، اما چرا میخواید که اون مشخص بشه؟ اگر هدیه شما مستقیم برای خدا هست، چه لزومی داره که دیگران از هدایای شما باخبر خبر بشن؟ شبانان چیزهای زیادی از اعضای کلیسا یاد می‌گیرند. اولین باری که من و همسرم شبانی یک کلیسای کوچک رو شروع کردیم، حدود 20 نفر اعضای بزرگسال در اونجا بودند. راست بگم، من نگران بودم که آیا این مردم از ما حمایت خواهند کرد یا نه. راستش همسرم در بیمارستان به خاطر تولد اولین فرزندمون بسیار مریض بود. او سه دقیقه تشنج کرده بود و انتظار نمیرفت که زنده بمونه. ما پولی برای پرداخت هزینه های بیمارستان نداشتیم و می‌دونستم که مخارج بیمارستان بسیار بالا خواهد بود. من به این گروه کوچک قول داده بودم که اونها رو شبانی خواهم کرد و اونها گفته بودند اگر کلیسا درآمد داشته باشه، هفته‌ای پنجاه دلار به من پرداخت خواهند کرد. اگرچه زن من جدا مریض بود، او از من خواست که برم و در اولین جلسه موعظه کنم. وقتی برای اولین موعظه رفتم، به لحاظ روحی کاملاً در هم بودم. بعد از جلسه مسئول مالی کلیسا ورقه کاغذی رو به من نشون داد حاکی از اینکه در اولین جلسه چه مقدار هدایا جمع شده حدود 1442 دلار بود یادمه که گفتم فکر می کنم شما نقطه ممیز رو جای اشتباهی گذاشتید او گفت نه جاش اونجاست دلیلی که این زیاد شده به خاطر اینه که خانم اسمیت هزار دلار در سینی هدایا قرار داده من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم اونجا ایستادم و به خداوند گفتم من هرگز به توانایی تو در رفع نیازهام شک نخواهم کرد وقتی خانم اسمیت از جلسه خارج شد من با او دست دادم و گفتم میخوام واقعا از شما به خاطر اون مقدار پول تشکر کنم او گفت من اون پول رو به شما ندادم من نمیدونم شما این را از کجا فهمیدید هدیه من به خاطر پرستش خدا بود و هیچ ربطی به شما نداره میدونم که فقط تونستم بگم بله خانم او به تندی برگشت و رفت. و آشکارا منو توبیخ و ملامت کرد من فقط گفتم بله خانم اما درس بزرگی یاد گرفتم هدیه او ربطی به من نداشت او به خدا داده بود من چیزهای زیادی در مورد مقررات دادن به خدا یاد گرفتم و شاهد بودم که دیگران هم در این زمینه رشد می‌کنند یک بار دیگه هم ما توی خونه کوچکی گرد هم اومدیم و میخواستیم که کلیسایی بسازیم میدونید خدا به هیچ چیزی نیاز نداره اما کار او نیاز داره اون کار به ما فرصت رشد میده و ما رو به چالش می داره که هدیه بدیم کسانی که در این گروه بودند افراد بسیار فقیری بودند اما من مردم رو به چالش می داشتم که هدیه بدن مرد جوانی با همسر و دو فرزندش در یک خانه کوچک زندگی می کرد و درآمد بسیار ناچیزی داشت اما من همه رو به چالش واداشتم تا برای ساختمان کلیسا هدیه بدن شنبه شب در خانه ما به صدا در اومد. من دم در رفتم و این مرد جوان فقیر رو دمه در دیدم او تفنگ شکاری زیبایی در دستش بود که نظیرش رو قبلا ندیده بودم او تفنگ شکاری رو به من داد و رفت میخواستم بگم که نمیتونم این رو بپذیرم اما او برگشت و از پلهها پایین رفت من فکر کردم من کیم که نتونم این رو بپذیرم او یقینا اون رو به من نداده من اینو از خانم اسمیت گرفته بودم پس به این فکر افتادم که باید ببینم با این تفنگ چیکار میتونم بکنم در اولین فرصت روز دوشنبه به یک تفنگساز مراجعه کردم و این اصلح زیبا رو نشون دادم چیزی که فکر میکردم بشنوم این بود که این تفنگ شکاری زیبایی هست من داستان رو به تفنگساز گفتم و ازش خواستم که ببینه چیکار میتونه برای اون بکنه او با حیرت به من نگاه کرد و پرسید توی اون خونه کوچک چه معزه ای کردی که باعث شدی مردی تفنگ شکاریش رو به تو بده به نظر می رسید که او فقط به همین فکر می کنه. او ادامه داد چرا باید یه نفر این تفنگ خاص رو به یک کلیسا بده وقتی در مورد معزم با او صحبت کردم او بالاخره بهای خوبی برای اون تفنگ به من پرداخت مدتها بعد از من خواسته شد که برای مشایخ کلیسای پروتستان در هتلی در نوار ساحلی صحبت کنم واقعا نمیدونستم که اونا می من راجع به چه چیزی صحبت کنم چون که اونها به وضوح نگفته بودند قبل از اینکه جلسه شروع بشه و ما دور میز بشینیم من گفتم بذارید ازتون بپرسم رویای شما برای آخر هفته چیه از من میخواید که راجع به چه چی چیزی صحبت کنم بعد صدای آشنایی گفت فقط به ما بگو که چطور میتونیم تفنگ شکاری یه نفر رو از او بگیریم وقتی به طرف او برگشتم تفنگ ساز رو دیدم او یکی از مشایخ کلیسای پروتستان بود در اون آخر هفته مشایخ بر سر این بحث میکردن که آیا کلیساشون رو جا به جا بکنن یا نه؟ کلیسا در یک منطقه متروکه قرار داشت و کسبه اون محل نمیخواستند که کلیسا از اونجا بره چون که ارزش عراضی اونجا کاهش پیدا میکرد. به هر حال شاگردان واقعی اون کلیسا میخواستند که از اون محله متروکه به جای دیگری برن. به خاطر اون آخر هفته غیرمعمولی و مس العاده، روح القدس در تمام مسیر ها با مشایخ کلیسا منو هدایت کرد. اون مشایخ تصمیم گرفتن که کلیساشون رو جابجا جا کنن. امروز اون کلیسا کلیسای قدرتمند در رو به روبروشت هست. من نمیتونم اینو ثابت کنم اما معتقدم که خدا میتونه هدیه ناچیز یک زن رو و یا یک تفنگ شکاری رو بگیره و اونها رو تبدیل به چنان برکتی بکنه که هرگز کسی اون رو فراموش نکنه. من معتقدم که به خاطر اسلحه شکاری که اون مرد داد امروزه اونجا در اون محله کلیسا و اجتماع قدرتمندی به وجود اومده حالا این داستان شما رو با چه چالشی مواجه میکنه و یا چه کار بردی در زندگی شما داره آیا تا حالا اسلحه شکاریتون رو به خدا دادید هر کسی یه اسلحه شکاری داره هر کسی چیزی داره که براش ارزشمنده عهد قدیم به ما میگه که ده یک بدیم یعنی اولین ده یک مال خداست اما اگر شما یک میلیونر هستید، شما شاید 10 یک بدید و چیزی از دست ندید. اگر ده میلیون دارید و یک میلیون به خدا دادید، شما هنوز نه میلیون دارید. و به لحاظ مالی وقتی نه میلیون دلار دارید دو چهار مشکل نمیشید. در اختقدیم قدیم ها هدایا هم میدادند که هدایایی به غیر از ده یک بود. حالا شما باز هم میتونید از اون نه میلیون دلار هدیه بدید و چیزی ازتون کم نشه. اما در عهد قدیم اونها قربانی هم می کردن. اونها قربانی رو اینطور تعریف می کردن من نباید چیزی رو که مجانی به دست آوردم برای خدا قربانی کنم قربانی کردن همه ما رو در یک ست قرار میده. اگر شما ده میلیون دلار دارید و من هزار دلار و ما بخوایم قربانی بدیم شما مقدار خیلی بیشتری از آنچه که من دادم خواهید داد من و شما هر دو اسلاح های شکاری من رو خواهیم داد من معتقدم که مردی مثل اون مرد جوان که اصل شکاریش رو به خدا میده، به لحاظ روحانی رشد میکنه. خدا به او برکت میده و اون رو زیاد میکنه. اما هدیه دهنده به لحاظ روحانی رشد هم میکنه. آیا یاد گرفتید که مباشرت به این ترتیب کار میکنه؟ مباشرت مقرراتی روحانی هست که ما به اون وسیله ثابت میکنیم که خدا وجود داره. پدر آسمانی شما حضور داره و وقتی شما به او هدیه میدید، نه به خاطر اینکه دیگران ببینن بلکه فقط به خاطر امیدید او به شما پاداش میده آیا درک کرده اید که خدا واقعا وجود داره و وقتی شما توفنگ شکاریتون رو به امیدید و یا هر چیزی که باشه خدا به شما پاداش میده و به شما ثابت میکنه که او هست و واقعا و حقیقتا وجود داره عزیزان خدا به ما فرصت خارق العاده میده که با هدایامون اون رو بپرستیم ما باید درک کنیم که هر که هستیم و هرچی که داریم هدیه ای از اون هست برای ما که اون رو مدیریت کنیم و به این ترتیب با دادن بخشی از اون هدایا به خودش میتونیم اون رو بپرستیم. آیا شادیه پرستش او رو توسط هدایا یاد گرفتین. امیدواریم که این درس ها به شما کمک کنه که در آگاهی و درکی کلام اون رشد کنید و ایمان شما قوی تر بشه تا بتونید تماماً به اون اعتماد کنید. تا برنامه بعدی دعا می کنیم که فیض اون در زندگی شما سرازیر بشه و لذت پرستش شو رو هر روزه تجربه کنید.